باسرين حوري خلينا نكتب قران بنيو حكمتك اني نسنده كتابي تشتهي من جمر نسيني حجر الكرياني شو بدنا علي مرکردنی دلیر سلین گرانی عزیزو خوشویست جوانترین ترین سلاوتن لبه خوشحالین لبشی پنجاوکی خون نوی کتبی چشتی مجوری هجاری مکریانی حتی نولاتن فرمون لگل من بن هجاری مکریانی بردوامی گیرانوی بسرحهت جانی خویده یشتا لگندکان دوروبری موسکویو بمشیوه جانی خویمان بوده جراتو توا لرادیو زانی من شواف و چند افسریک بدندانی ناصر لقاسم حلق راونه قاسم بسرینده زال بوا راجنامه موسکو نوسیان برزنی توانی هره شواف لناوبره شیوئی و خوکوت بون دادگای گلین لموسل پیک هانی بوا عبدالرحمن قصاب ناوی کن کرده بود دادستانی دادگای پرولیتاری بسطان کسیان لخلق موسیل پش دو دقیقه محکمه بداری چرا برغده حل واسی بود و گوناو شرکو تبون هر ترکومانی کو کرده که نحزیان برچنگ هات بود بگولیس رایان کشابو قتل و آمی که زهور بسامین کرده بود با بو نمونا هر دولاقی نحزیان بدو جیپو بست بود جیپکان هر یک بولایک تا ر لبریک یک حلقلی شاوا ایتر قاسم گیوتا ایسکانی چند زلامی که لسر رادیو هجومی بو کردون. جلال بیتوشی نامی کی لبرلین و نردم نامی جودت ملا محمدناوی که شیوعی کویبو. بو دلی جلال نزانی چن خوش بو هرچی لموسل دا دمنگرتو دمنزانی هاولنیا برشق منده دا درکاری منده کرد دمندا دست محکمه دست بجه دیگو بیبن بن بداریده کن باو سر شیرینت سوینده که هندم شغده مرتجع آن داوه استاش لقب دیشه. کجی زورجوان و زرناس کوناز در که دم دی جارجار دقل اسکر ال ای دا دگر را بمنیگود من حاضرم دقل اسکر بتم بگدا خویلی تورکردوم تو پی بله منی شوتم اسکر او کجلا بابو با پیریش زیاده بونای بی بغده ایوی شو تی کا کا یما لە بەغدا زاغنشینو یەک جار فقیرین اوک چا حمام دیوەاوی خاوین شری لازمه فیر سینمایا هر دو ڕۆژ مالو حال من ببینی دڵیدا توخی گۆتم عفرین بو یزدان پاش گەرانەون بو بەغدا بە چەند مانگ یەک کورێک هاتەڵم وتی asker گلیید لێکا بو چی کارت داواتم بو نرد و نهت منیش گۆتم کارتم ندیوە داوات چی وتی آی خبرت لەشیا قصر لا جركي وزير يكرو جنيه ناوا فتر ل 500 كاسي لا اوتيل بغداد كجمي كي ب 15 دينار دعوت كردبو منجوتم اخر او دګو زغنشین موزور روتورا جالم كابوتي بالي بالي او ساوابو استا وایا اسکر خل منه تیګشتم زغنشینی کریکاری ساده کارخانی جګره خو ابو رخصندو بغات موسکو بو ته حاجی ولا شویان وقدر دستی بکونی پول دا چوا، ایستا بود او پیاو نویشین راوه ماموستا اسکر هستم دا کرد روسکان هیچ خوشیان زر زرد ندهد اگر فیلم چینی با کس زیگر ناموکان نده چوا تماشای چوار چینی جن و جنه جاپونی یک ویتنامی لیبون کورا چینی کن هرچن حتی بون استراحات همیشه سریان بسرک باو بود نیان دا پر جا حوالتی کس بکن ویتنامی که لعکاسی دزانی من که حوالانی ایسایشگاه دبو در منو کاغذ و فیلمی نجیرای خوان بینن. وک دکتوری تارانی وقتم دادنن اگر روزی باران بی فلان ساعت بوین چاب دکم. بوا زور ممنون دبون. کور را ویتنامیه که فیلمی خوی اکسی دگرد با کاغذ خوی بوی چاب دکردن. لجوابی منده که بو وک من ناکی ویتی من زردم تو اسمری چاورشی بوح علاش هرچندی دکم لیم رازی نینو حو لأسایشگاه در جوری تاریک و ماشین عکس گوره کردنوی تدابو فتحیوتی لسر بابه که خورم دینی شتیکم نوسی چاب کرا ایستا دموشتی که لزیاد کم کدیسان بوم چاب کنوا لطوریزه و کاروان با کردستان در برو بغداد رو توشی چند جه به بوم بونوسی دی گوت آی ناوی گنه دار آفان دول سیریان چند پیگرینگ بوا بایان چاب کردو. دکتر رحمانی حاجی باغر نامی رسمی لولوشین نو که لکومیتی مرکزی حزب داو بسر سیاست روجلات نوارست را دگیشت بوهینم. نسرابو تکای حال و احوال عراقمن دا مقال یک دا بوب نوسا. با کردی نوسیم دای دکتر با روسی ترجمه که وطی کردیه که زنم بریا فارسی با کردیه که نزانم بخواه روسیه نه زنم. سلماسی ترجمه کرد لما جلی عدبیت و جینده چاب كرا. 4000 روبل یان بونردم بلام لاجیاتی نایوسر ولوشین دن رابو زورین لا اسواری نوسرانی روس به عربی بوهینا بو ل نا یاندا ناملکه شه ده کی مایاکوفسکی حبول نبرد مثلا هور لپاتولدا پاتولدا بلام وقسی یسیر بو وقت زیقی چو داوامکرد فرسیاکین بوهنم فرق کی نه بو خو چون او کبره د بوق ګوګلو ماکسیم ګورګیو چیخوف و کیوکی حساب کرده بیا زیاتریش لا موایا هرچون کدلې شانازي دکم کلاوی چی کومونیستم او رزیلی جیراو کوټل لا کوټل همون سره بنو یا روسی برستره رنگیشه من وګ زلامیتی تینګېشت بمو عقل م هر اوندی برکردیبه روج یک دو زلم به باریک دوربینو زپتی سو تو او جور کوتن 6ی اکتوبر شتێگبل ل رادیۆ دا بلاو بکری تا و منیشوتم دەبش شێعرا گونمسم سبی ورنوا سبی لێم پیدا بو نوا وتم شێعرا کەم کوردیا وتیان تو فارسی یان عەرەبینا زانی وتم ل فارسی ملوانم ل دا تام ل دنیا دانیە اوانی شوتیان جاچون کە کوردی جێگەل موسکو دانیە بە عەرەبی تەرجەمە ک وتم بەرنامە من کوردم بکرده اتن مبارکه دنک کس من لکس هرچی کنه جورا و من جمن جان کرد فایده نبود روی نوا دوای دورش هات نوا و تیان باشه بکرده با بله وتم آخر پیش اکی کی پخش نیش من بونو سیوا که خالق داشته ارقاب گا و تیان باشه ایش بله شرک لرادیو بلاو کرایوا تجیشتن بودشی و هالانم کدهاتم با موسکو با عربی قصان دکرد و با کرده قصان ندکرد دعوت کردم سفرتی ایران که جشن داد مزرانی کدتا بود، بلکه کردی و چه می‌کردی سحره؟ آوان دلم لیکو عکس گرفتم و پرسیار لیکردم که سفری ایرانی عبدالوهاب محمود و تی تو سفری که لمن شکتی با ایران ناسندن. لوا جشن داد که ایرانیم دی بناوی حمفرج کداین گود لوا سورانی بناوی کرد کردستان جوت هال دخاتو. هد بلامو روم لی ور جرگریا. و تیم، هجر، من اندجی ملتی خون بوم، بلام همیشه دلم با کردو کردو کردوستان سوتاو، نمیاراو راستی دل خون بله. پیم برادر، تو زور سرخوشی، سبای لبیرد دچه تو پشیمان دبیتوا که بسی خوشوی سیگلی خود کردوا. هشت منگ لگیردسن زور بخوشی رن بوارد، حتما ماسکو لسر حساب نو سرن لأوتیل میتروپول دامزرم،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 همیشه خوش می‌شن و استش هر زورم خوش من چوم عراقیش وا تازه گر رومتوه. گوتم میرزا میرزه زنم تو که هندک کردت خوش دویش شوی باصره سلیمانی و هولیر لبغداش زور نوسر و شاعری کرده همون هیچ یاد ندید شیوی کن نه انشت خوش ویست کانت ببینی عراق و رقصی بغداد و باصره لکرد خوشتر بو گویی او ایمان تبمن دبی عذرم لیب خوازی میدویویوف لنینه پرسی، دلین چی؟ ایوش ویتی نازانم، با فرسی خسینده کرد، من با عربی با نینم شراده. میدویویویوف ویتی، طرسنزاده تو دبا اوزر لوکاری خود بخوازی، یان دبو نلی کردم خوش دوی، یان دبو بچیلی کردانش، حقی هجاره. هر لو مجلسه دایک دا پرسی، تو کومونیستی؟ ویتیم، نخیر، نسیونالیستم، دیسان میدویویوف گویتی، هجاری ناسیونالیستم پیل زور کومونیستان باشتره شرعه او زوری هاوار با چینی چو سوا کرده شلخو فیش کومونیست نباو پیوی چکی شد زور جالیتر می دیو یوفم دیتاو جالی کلی پرسیم سیم چوی بازار چون بو و زور گرانه گوتی یعنی حیو گرانه برا ل زمان شهر دو سالش اج دوای شر پول لیرفانکن ده بو بالام هیڅ نه بو پی بکرین شکر بککه استا حیو گرانه لکو پی دو جود گوروین برکوت بو ل بازار راش فروشتم من کا حزبی بوم نا چوم اقرارم بگونه خرد جاریک پرسیم توپیه اوکی زور زیرکی پیکنی گوتی جا بود بجیرموه از مون کلاسی ششم دابو فراشی مدرسه گوتی هرکس دو رو بلم نداتی کارنامه نیشان ندم به هزار گیرو و بدکای دایکم دو رو بلم لباوکم سندو بردم لکارنامه کم دا حوال بوم بلام حوال لتیشکاوکان کم هنان دا لحموان لفیشتر بوم دو زلی جانانم لباوکم خوارد کدوم روبلکهای با خسارت شو؟ جنکی نوسر و جولگاش شعرکانی منی بررسی ترجمه دکرد. اولش واردین مستفاه سلماسی. وقت بلند بودج ولاتی شوروی نویل نوسر و شعر او هنرمندانو بتابتی هنرمندانی سرشانو خارز دکره. زریکی کیسه اولایه. به هر دیارک کل تابیتک بدر حساب دکره چهارده روبلیان داده بخوانیو چهارده روبلش ورگیر واردگرد. پول بومن دباري. پتر لا هزار روبل نرخ شعر و نسرای و پخشانم پیگه اشت. ویستم چابخانیگ بکرم. سالماسی زوری درک و دیوان کرد. ویتیان با دروا با روبلی نفروشین. لوی نهومیت بوین ده هزار روبلیان با با هزار دولار گره باو با شرطا کلا بغدا بمدنی. او همو پولا کلا روسیا نبینا چی چی لیب کم. ملمنا لا تخشان پخشانی دعوتی عاشنایانم پیده کرد. دعوت کرد. هزار و دو سبت روبلم لجای مکداب جارد، سررای پولیزوریش حقیقتی خواردنو سفرم لسرنو سرانبو، او تیان، دمانوی کارخانه کرخانی ماشینسازی و امانت نشاندین، وتم هیچ چی تیناگمو نشتم، هزم لی موزو نقاشی هنرمندانو هیچی تر، بزور موزان دا گرامو، راستی زورم کیف هتن. لی اداری روشنامی پرابدای جوانانوه داوام لیکراکه مقاله د دربارې اشتی بنوسم مقاله که و ابو لمصر قدیم دا کسنات لشاران پرې سندبو ورزران او ماسګران د کریکاری بو شاران جنو ماسي زور لکمیدا کاهنان اینی وناو خلق کوتن کباب ای ونا ځنن دنیا لسرپشتي گا ماسي بندا اگر جنو ماسي برهم نه هنن دنیا ټیک د چیو خلقي شار لبرسانو بی دمرن شرناسانی دنیا دلین، او سربازی لجبه شرا بر برهمی یازده کارگرده خواه، خوشی یکک، او دوازده کس لوانه گنم و گوشت بر هم دینن لکارده کون. او دم لسر باسی عشتی و خرابی شرد دوابون، مقاله کم لروجنامکه دا چپ کرا، دعوت کرم با اداره، سر نو سر بوتی، و تلگراف به هاتوا، دلین شش منگل و مقاله به هستر لسر عشتی چپ نکراوا، تو نو سر یکی زور باشی، گوتم من وسریه کام هرناو منیا بلان فرق اویا لیرابو نوسران فکر د کنو من بو خون فکر د کمو دینسم پولی زور د دن بنوسل پیدالین لا فران بازده کلمه نه زیات نه نوسر بو پولو کی کار بدس ل راضی به نگ بو خویل نو سین کی خوئی بو نمونه کتابکم به عربی خوندوتوا 400 صفحه د داستان کی روسی ترجمه بناوی نارې رونق هموی په فوختی باسی ګل کې کې رسنه کله خوځه به کله خوځې فروشتوم پاشان لسندوتو اگر من ترجمه من فکر دایې په صحه یک تاو ده و سکان منی په احمقانه بو بلام ګوتی تکایا شته تریش بو بنوسه گوتم من لبنی مقاله کنوسيب حجار شاعر کرد یو نو سیو تانه حجار شاعر عراقي یعنی چی ګوتی و من زنیواد په خوښه من جوتم ما موستای بارز تو بنریه بازار بلې شوتیم وب کړم من بچم سنجوت وب کړم بلې موامزانی سنجود پی خوښ نه خیر لنای کورت خود پاراستو اتر بوتان نوسم دگل سلماسیونی نه جولککی ورګر اشاره کنم چوینه ندیدنی نازم حکمت پیویچی بالا برز چورشنبه چاوشین موزرد حتا بلې خوین شیرین لسر تختی پشت، لسر تخت راک شابه دلیبو نه بوایا زور ببزوی. وتم زربداخوم او د لیکه لغوشه کوردی ددايه جان کا گوتی آی اوقس شاعرانه کل ناوند دلم د نه لغوشه ده بمندالی لمال بدرخانی کرد و عربی و کومونیستکانی سوریا لیت رازی نین اویش هر لسر اوخسانی که باسی کردکی و تی چم پیدلین؟ و تیموالا چت ارز کم دلین های دای نازم حکمت بین بالیشتی کیوا؟ زور پیکانی گو تی هوا نکرن با جنیو بدن هرکس یاری ده. امگل بست ازمان لیا قوم او نده نبیب خوی بلیبنی آدم دلمبم خبرت خوشا دو جن خزم او تا فراوین نخوی نبیبروی، او سا موزه خوامت نشان دادم، دوی فراوین بسبره سبره پیش مند کود، هرچی همو دنیا و دیاری که انبوه نبو، موزه که لیپکی نبون، گوتم، استاد، دفرموی کردم خوش دوی، ادی که اشتی که کردانه؟ گوتی، آی، چند بپلی، وره، لسر تاقیق مخمری سوز رخ را بو، جوت چن کوچکو از دار، چند سبیلی کلک و گلین زور با جوانی ریز کرابونو نوسرابو. دیاری برا کرده کنم. گوتي بر لوال تو پر سمبیست که کومونستان سوریه مقالی که من یا ترجمه کرده بوم. نایو کرد و کردستانیان در اوشت بوم کمن نوسی بوم. اکس یکی خویو چند کوچکو گلدانی که داری زور جوان که دستگاری امریکای لاتین بو، با دیاری دامی. که لبغدا وک عزیزترین یادگار حلم گرته برد. که ویستمان بروند غوته دو نمایشم لاموزکو نشان داده چند بالیت داده نی نگوته دوازده غوتم استاد آوجولا که دیو بیفروشیتو لسه پترم نهه غوته نه دوازده هر دادمه تلفنی کرد بروجنه پیوت چونی لاتشا حد مجدا کم دوانزا بالیت بنابی حجار بنیره روید من کرد آوا دبیرج نان بدوه نی فیر به فیر دوای هر خوی غوته با خواپیم وای لمن شیطان تری ده زانی چون خلق بدویانی چوما تماشا یک یک ذنومایش نمکنی برستی بشاکارم زانی